اللهم صل على فاطمة بأبيها أبيها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباعثه تبول معصومین مبحثمونم بحث سیاه دونه اینکه امام صادق علیه سنان فرمودن که مصرف سیاه دانه شفای هر دردیه و تا هزار بیماری رو مداوا میکنه یا رسول الله فرمودن شفای هر دردیه فقط جلوه اجل حتمی رو نمیتوان گرفت در بعضی روایات امام صادق علیه السلام فرموده جلو اجل حتمی هم میتونه بگیری اما با دعای بجا و به موقع که قبل از اون دعای بجا و به موقع کار صحیح به نوع عمل صالح با نیت خالص داشته باشید دعا میتونه دعا میتونه جلو اجل حتمی بگیره اینم روایاتی که داریم حالا بحث اون چنه که شیکمی ها این ها هست تو بحث درمان های عادی به نوع حسی به نوع حسی و تجربی یعنی تو یک ثبوم علم هستیم تو دو ثبوم دیگر نیستیم یعنی تو علوم عقلیه و علوم شهودیه ی عرفانیه نیستیم فقط تو عالم حس و تجربه این که یک ثبوم از علوم. حالا تو بحث سیاه‌دانه با سیاه دانه چه بیماری هایی میتوان درمان کرد مثلا اگر شخصی کلسترول بالای خون دارد ال, دی ال خونش بالاست یک قاشق سیاه دانه که آسیاب شده با یک قاشق گیاه اخبلیه اخبلیه گیاهی از تیره گیاهی از تیره آلاله معروف به هزار برگ این دوتا را رو خوب قاطی هم میکنیم در یک فنجان اصل خالص طبیعی مخلوط کرده هر صبح به صورت ناشتا به مدت پنج روز میل می شود میزان کلسترول خون کاهش پیدا میکنه بعضی کتاب قدیم به جای اخبلیا اخیلیا دارد منم خارج از کتاب هاشی مطلب بیست و تو بحث درمان ها. اگر کسی سنگ کلیه دارد چه به نوع کلسترولی یا اگزالاتی و چه به نوع سیلیکاتی و بخوایم سنگشکنی طبیعی کنیم بدون استفاده از سنگشکنی مغناطیسی و سنگشکنی لیزری بخواهم سنگشکنی طبیعی کنیم اینجا سنگشکنی رو با سیاه دانه انجام می دهن. یک فنجان سیاهدانه آسیاب شده را با دو قاشق اصل خالص مخلوط کرده سه پرله سیر له شده را به آن اضافه و کاملا مخلوط میکنه این مخلوط رو سه قسمت کرده پس از صرف صبحانه میل نمایید بهتر از نیم ساعت پس از صرف یک سوم این معجون شربت آب لیموی تازه که آب لیموی آن را با پوست لیمو آبگیری شده باشد یک مقدار از الکل های موجود در پوست لیمو ترش رو لازم ده شربت آب لیموی تازه که آب لیموی آن با پوست آن با پوست لیمو آبگیری شده باشد مصرف نمایی سنگ شکنیه. طبیعی سنگ های کلیه به هر نوعش باشه وقتی برای مردم زحمت هست ما دیگه میگیم ای سیاه دونه رو با عسل بجو بخور این از این راحت تره. یه قاشق چای خوری سیاه دونه رو و یه قاشق پلوخوری خوری اصل این دوتا رو با هم بجو بخور اگر فصل لیمو ترش نبود اگر در نبود و نبود ومانندو اگر پولش نبود هر گرفتاری داشت این همه راحت در بهترین زمانش هم شب قبل خواب این در گرم مزاجانه اما اگر در سرد مزاجان باشه یک سوم قاشق چای خوری میشه. یک سوم قاشق چای خوری اگر در معتدل ها باشه نصف قاشق چای خوری سیاه دانه و یه قاشر پلو پلوخوری اثر دو تایی با هم می جوین می خوریم. مطلب بعدی اگر کسی یا کسانی اسهال آمیبی دارن تو بحث های فوق تخصصی سلولی و مولکولی مثل جاوتس مثل آدلبرگ مثل دکتر محبی دکتر همتی و مانند اینا اونجا مومن بحث باکتری شناسی، قارچ شناسی، آمیب شناسی، ویروس شناسی حالا تو مباحث ما بحث آمیب حالا میتونیم یک زده آمیب طبیعی استفاده کنیم و اون بحث سیاه دونست حالا اینجا شو ای این دکتر حسین قسمت آورده اونایی دیگه که خارج گفتن کتاب فوق تخصصی میکروبیولوژی بیولوجی و مترجمه اندازه قطعی المانجده به فرهنگ انگلیسی حیین درمان اسهال آمیبی آمیبها ها تکیاختهایی هستند که وقتی وارد دستگاه گوارش میشن به دیواره معده میچسبند. و کمترین بیترجهی و اهمال در برخورد با این آرزه موجب دل درد و، دلپیچه و شکم روش و اسال می شود. به همین جهت اقدام سریع و به موقع در پیشگیری و درمان آن عاملی مؤثر در سلامتی میباشد. در این شرایط با بهرهگیری از سیاهدانه می توان جلو پیشرفت و توسعه این آرزه را گرفت و زمینه بهبودی را فراهم کرد توصیه می شود برای درمان اسهال آمیبی یک قاشق سیاه آسیاب شده و سه پره سیر کوبیده و نم شده را مجموعاً با یک لیوان آساره گوجه فرنگی یعنی گوجه فرنگی که دارای نمکه بهشم نمک زد، نمک پودر سنگ به مدت حداقل 20 روز این داروی مرکبه مصرف شود اسهال آمیبی شخص خوب می شده. چون آمیب اگر به مغز انسان برسه انسان میکشه. لذا همیشه میگیم قبل از وضو که استنشاق مستحبه آبت آب ولرم باشه آب سرد تگری نباشه چون رشد و تکثیر آمیب ها در آب سرد تگری سریعه اینا قبلنا گفتم اگر کسی عوارض چشمی دارد مثلا چشم درد دارد اینجا نگاهش به کتاب یا کاغذش یا صفحه تلویزیون و مانند او به صورت عمودی نباشد دوم به صورت دائمی نباشد هر یک ساعت نگاه کردن صبح ساعت 20 دقیقه به چشمتون استرحب بده. این بر این بر نگاه کنیم در زمینش هم گردنتون حرکت می که شبه دیسک گردن هم نگیریم بروس شد حالا تو خوراکی ها. افرادی که مبتلا به چشم درد هستن می چند قطره روغن سیاه دانه را در یک لیوان شیر تازی گاو چرب ریخته و قبل از خواب بنوشن حالا خواب از نظر زمان تو روایات شیعه چند قسمه؟ از عیس زمان هفت قسم مواعظ العددیه متعلق چهار قسمش مکروه از عیس زمان خواب وقت از آن صبح که فجر صادقه دوم خواب وقت زوال که انگام زهره سوم بین طلوعن یعنی بین فجر صادق تا طلوع خورشید مکروه خواب هنگام مغرب شرعی که گاهی اقتیاب قرص خورشیده گاهی ذهاب حمره مشرقیه است گاهی مطلقا ذهاب الحمره که مال اقتیاب قرص 60 الی هفتاد روایت در کتب شیعه است مال ذهاب حمره مشرقی سی الاج چهه روایت است مال مطلق ذهاب الحمره فقط یک روایت از صحیح حسند. که مرحوم امام خمینی بر طبق این روایت صحیح السند به کتاب عروت الوسقای حضرت آیت الله مرحوم سید محمد کازم یزدی تعلیقات زده. چاپ, اسلامی... چاپ اسماعیلیان قام. تعلیقات و حواشی امام خمینی بر کتاب عربت الوثقا این احتیاط عملی تامه که کل 180 درجه قرمزی در آسمان نباشد حتی در طرفی که خورشید غروب کرد قرمزی اونجا هم رفته باشه حالا مؤمنان مب گم نکنید در چهار زمان خواب مکروه چارتا که گفتم سه زمان دیگه خواب در شب جایزه خواب بین روز مثلا یک ساعت تا یک ساعت و نیم مونده به از اون زور خواب مستحبه خواب قیلوله باقاف مستحب. خواب بعد از نهار که مقداری قدم بزنی سفره جمع کنی بعد یک قرارگاه دشمن برید سمومت دف گنیو بعد تجدید وضو کنی بعد بیای بخوابی اینجا راحت للبدنه یعنی مستحب موکده خواب بعد از نهار با این توزیعی که دادم این راحت للبدن این مستحب موکده خواستم حرفای دکترها رو حاشیه بزنم که مطلق حرف نزنم تو روایات یه از حیث زمان خواب رو یه هفت زمان تقسیم کرد. پس در زمانی که خواب جایزه مثل خواب شب یا مستحبه که خواب قیلوله روز، یا مستحبه معکده که بعد از نهار یه مختصر را بری دستشویی بری دفع سمون بعد وضوع بگیری بعد حالا مخواهی بیایی بخوابی. خوابی حالا اینجا مؤمنم چند قطره روغن سیاه دانه که در پایه روغن زیتون جوشیده. با یک لیوان شیر قاتی هم کن حالا بخور تصایب فهم بودیم مومنان؟ یک کم آب تو درد میگردونیم برمیرین میخوابین همچنین دو طرف گیجگاه رو با روغن سیاه خالص ماساژ بدین مومنان درمان عوارض چشمی با سیاه دانه میشود مخصوصا چشم درد گرفتین مومنان چی شد؟ این ماله یه بار دیگه نه چشم شخص درد میگیره ناشی از میگرن یک طرفه یا دو طرفه است اونجا باید سردرد میگرنیشو درمان کنه که با گل راعی یا هو فاریق اون و گل بهار نارنج اول مغربه درست شد بعد با عسل. آبیشن نعنا قاطی میکنیم میخوریم سردرد میگرنی که خوب شد چشم دردی که یکی از عوارض سردرد میگرنیه اونم خوب میشه؟ یه بار دیگه مردی یا پسری تورم پروستات دارد. برای درمان بزرگی پروستات که یک آرزه دردناک در زیر مثانه هست بخش انتهایی کمر رو که این مهره بزرگ انتهایی قوس کمره که با لگن وصله اینه با روغن سیاه دانه خالص خوب ماساژ میدی با دست و نیز نائیه پایین اون البالو گیلاستون اونم ماساج بیدی با روغن سیاهدانه و برای کمک به تسریع درمان این آرزه یک قاشق سیاهدانه آسیاب شده که همون آن آسیاب کنی همون آن با اصل بخوری بعد از شام و هر روز صبح اما اگر طرف مثلا گرمزاج بود یا مزاجی شدید بود ای که کل بدنش پفله میزنه قول مشدی دو دونه میزنه و یا کهیر شدید میگیره این گونه افراد باید این رو با کتیرهای خوراکی بخورن کتیرهای خوراکی مصنح گرم و که بسیار سیادونه است پس باید ای دوتا رو با هم بخورن علاوه بینی که اصل میخوره ها باید کتی را کنه در گرمزاجان یا اونی که گرمزاجی شدیده این هم ماله این اگر کسی زعف عمومی داره و نای نشستن یا راه رفتن نداره درمان زعف عمومی شدید در افراد یک فنجان سیاه دانه و یک لیوان خشک را آسیاب کرده قاتی هم می همچنین محلول انبر، محلول عنبر به آن اضافه می کنه. آقای مرحوم محمد مؤمن حسینی در توفه حکیم مؤمن قشنگ این بحث محلول عنبر رو توضیح داد. پس این ستا چی شد؟ یک فنجان سیادونه، یک فنجان شنبلیله خشد. یک قاشق هم محلول انبر این دو طور آسیاب قاتی هم دیگه یک قاشق محلول انبرم قاتیش قاطیش میکنید. سپس دو لیوان اصل خالص سپس دو لیوان اصل خالص به این مخلود اضافه کرده خوب هم میزنید هر روز صبح از این مخلود با نان سبوستا مثلا نان سنگک حالا مؤمن پس با نان سبوستا بهترین نان سبوستا نون سنگه که وقتی که سبوس گندم هم هم باشه حاجه اگر کسی افسردگی عادی یا سرماخوردگی روانی داشته باشه همچنین کسلی داره ذاتا تنبل نیسا یا مثلا رضائل اخلاقی نداره که بخواد کسلی و تنبلی کنه که کسلی و تنبلی و سستی و کاهلی دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه و هر دوش حرامه الکسل و حرامون از وجر و حرامون و سزات جمره از وجر حرامون هر دوش حرامه این از فرمایشات امام صادق علیه السلام در ابواب فعل معروف در وسایل الشیعه تهذیب یعنی مدیریت بر خویشتن جلد 11 چاپ اسلامی تهران چاپ آل تو جلد 16 پس شخص ذاتا یا بلعرس کسلی و تنبلی ندارد که به عنوان یک سوء اخلاق یا یک رفتار منفی باشد نه به خاطر مسائل دیگه دچار کسلی و یا افسردگی شده مثلا اگر کم خونی شدید دارد یا همیشه فشار خونش زیر دهه یا افت مایعات خونی افت پلاسمای خون دارد این شخص دائمان افسرده هست به نوع یک افسردگی عادی یا خودی روانی دارد و همیشه هم کسله یعنی تو انجام کار سعیش کم میاره رو نمیتونه به اتمام برسونه یا اگر بچه مدرسیه همیشه تکالیفشو ناقص رها میکنه حوصله نداره بر اتمام تکالیف محوله درمان چیکار کنین؟ مباعثم تو سیادونه صبح ناشتا یک لیوان مخلوطی از آب پرتقال شیرین طبیعی و آب هویج یعنی زردک هویج رسمی جزر مخلوطی از آب پرتقال و آب هویج ناص و به قول عربای عراق خدا حفظش کنه نصف و نصف نص لیوان از آب پرتقال شیرین طبیعی نصف لیوانم از آب زردک طبیع جذب که بهش هفت قطره روغن سیاه دونه خالص یعنی سیاه ای که تو روغن زیتون جوشیده اونم روغن زیتون خوراکی هفت قطره از این روغن سیاه دونه خالص به این یک لیوان آب پرتغال آب زردک اضافه میکنی هم میزنی میخوای کسلی و افسردگی هر دو خوب میشه صبح ناشتا یک لیوان مخلوطی از آب پرتقال و آب هویج که با آن هفت قطر روغن سیاه افزوده شده باشد میل کنید و این روش را به مدت پنج الى ده روز ادامه دهید توصیه می شود. افراد مبتلا به افسردگی و کسالت توصیه اخلاقی، ارفانی، فقی ذریع به توکل به خداشون اضافه کنم و ذریع به توسل به چارده معصومیشنش را افزایش بدم خودت رو از این دوتا محروم نکن یعنی از توکل بر خدا و ترسل به همه اطهار ترسل به چهاره خودت محروم نکن دوست داری حس اعتماد به نفس در تو ایجاد شود و پایدار و مستمرن باقی باشد اولین توکل بر خدا دومین ترسل به چهاره محصوم تو اکثر بیماری های جسمی و روانی که شخص را از تعادل مزاجی و تعادل روانی خارج میکند به خاطر مفقود بودن توکل و توسل در صحنه زندگی فردی و اجتماعی لذا این افراد مبتلا به افسردگی و کسالت متصل به یاد خدا باشند یعنی دائم و ذکر واقعی باشند همان گونه که امام صادق علیه السلام فرمود که میگه آقا دائم و ذکر باش ذکر حقیقی و واقعی داشته باش صرف اینکه که سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوت الا بالله العملی العظم که میگه اینو خوبه ذکر لسانیه نداره. هم نداره مستحبم هست بعضی مواقع واجب میشه اما ذکر حقیقی و واقعی داشته باش یعنی در برخوردت با حرام به یاد خدا بیاف حرام ترک کن در برخوردت با واجب به یاد خدا بیاف واجب انجام بده امام صادق علیه السلام فرمودن این ذکر حقیقی و واقعی اگر انسان ها چه مسلمون چه غیر مسلمون و مسلمون ها چه اهل تسنن چه اهل تشیع به همین فرمایش امام صادق علیه السلام عمل کنند که استاد امامهای های چار فرقه اهل تسننم هست ذریبه حس اعتماد به نفسشون بالا میرن اختلالات روانیشون بسیارش درمان میشه اختلالات مزاجیشون و از این که از تعادل طبعیه خارج شدن بسیاری خوب میشه اکثر ناراحتیهای دستگاه گوارش مربوط به اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنیه پس کسی که چکیه خدا باشه و ترسلش به چارده معصوم باشه دنیاش هم خوبه آخرتش هم خوبتره زرنگ باشید مسلمونا و غیر مسلمونا از یگانه دختر تیغمبر اکرم یاد بگیرید که حتی با نگین انگشتریش به من و شما آموزش سعی میدهد فرمایش معصوم را در بحار علامه مجلسی جلد چلاسه و کانم نقش و خاتمی ها امن المتوکلون نقش نگین انگشتری حضرت زهرا این نقش بسته بود در ایمنی فردی و اجتماعی و مانند او هستید کسانی که یگان اعتماد و تکیه‌گاهشون به خدای احد لاشریک الالم سرمدی ام که ز... که صمد غنی به ذاتم و همه مخلوقات از جمله افراد بشر به او محتاجند این هم یادگاری که خدمتون گفتیم و حاشیه زنید حالا دو تا نسخه آسون. مؤمن که بحث سیادونه سام میخوام فرمایشات امام ساده و رسول الله رو خوب تصور کنیم مؤمن نسخه اول اگر کسی روماتیسم شدید گرفته و این درد روماتیسمیش کل بدنش رو فرا گرفته 24 ساعت بیتابه و درد میکشه پس اگر کسی روماتیسم شدید گرفت و به همه بدنش هم سرایت کرد درمانش چیه یادداشت بفرمایید مؤمنا یک در بین روز آلو بخارا به تعداد 14 عدد به صورت مکیدنی بخورد یعنی دونه دونه تو دهنش بذاره تا آبشه بعد هستشی به نزه کنار دوم اصرانه یک لیوان آب انار شیرین طبیعی یا دو قاشق پلوخوری رب به انار شیرین بخوره یا دو قاشق بخوری. حالا سننا فرق میکنه خیلی کچکتر بود دو قاشق چای خوری میشه سوم، از مغرب تا وقت شام یه قاشق پلوخوری زرشک زرش که خام بخوره حالا مثلا نوجوان جوانه میشه یه قاشق مربو بخوری. مثلا کودک دو سالگی تا پایان یازده سالگی میشه یه قاشق چای خوری مطلب چهارون بعد از شام یه قاشق مربو خوری سیاه دونه با اصل بجبه و بخوره این در مزاجان. اگر مزاج بود میاد یک قاشق چایخوری چون روماتیسمش پیشرفته است به همه بدن استرایت کرده با شرایط عادی فرق میکنه که نصف قاشق چایخوری بود یا یک سو روم قاشق چایخوری سیادونه آنان شرایطش تغییر کرده شب قبل از خواب یک قاشق مربخوری روغن بنفشه خالص که در پایه روغن زیتونه میخوره و بعد کل بدنش رو با روغن بنفشه خالص ماساژ بده. کسی یا کسانی که روماتیسم شدید دارن و کل بدنش رو فرا گرفتن این پنشتی که گفتم ها درمان میشه. مطلب بعدی. اگر کسی روماتیسم عفونی دارد یک روز ما کلا بحث روماتیسم ها رو کردیم. این دوتا قلم افتاده بود نگفته بودم دارم میشه. اگر کسی روماتیسم عفونی دارد و انگشتای دست و پاش تا بند دوم همه به صورت سیاه شده و از داخل عفونی داروسیه اول یک پرهیز مطلق داره هیچ وقت نباید سرما بخوره دوم باید در معرض سرما و جریان هوای سرد نباشه اون دو سه هفته ای اول حتی میگیم تو حیات کوچه نیا. فعلا استراحت مطلق کن تو همین هوای عادی اتاق باش 20 درجه تا 25 درجه. تو حیات و بیرون این حرف هم نیا. پس پرهیز مطلق چیه؟ سرما نخوره، جریان هوای سردم نخوره. دارو چیه مؤمنان؟ یک صبحا شیر عسل بخوره ولی اصلش عسل اصل استخو دوست باشه عسل استخو دوست یک قاشق مربا بخوری تو یک لیوان شیر تازه کم چرب. بهترین شیر شیر چیه شیر گاوه یک لیوان شیر تازه گاو کم چرب با یک قاشق مربا بخوری عسل استخو دوست هم بزنه بخوره این یک سبونه کامله برای کسی که روماتیسم عفونی دارد دوم وسط روز آب شلقم سلجم لفت آب شلغم مومن دو استکان یا یک لیوان با اصل استخدوس یک قاشم مرب بخوری هم بزنه بخوری سوم، اصرانه یک لیوان آب سیب تازه رسیده که با پوستش آب گرفتی با یک قاشق مرب بخوری اصل استخدوس هم بزنه بخور. چهارم شب بعد از شام یه قاشق چای خوری سیاه دانه و یه قاشق پلو خوری اصل استخدوست هم بزنه دوتا تاشه با هم به بخوره پنجون شب قبل از خواب روغن بنفشه طبی خالص هم میخوره و هم محلها رو چکار کنه، ماساژ میده حاجقا بله اگر کسی بیماری آسید دارد یعنی آب آوردگی شکم دارد جدید از کتاب های مرجع مثل تشخیص بیماری‌ها، ها فریدمن اونجا تو بحث نارستی های کبدی آسید و آی باکولا میآورد یعنی آب آوردگی شکم آیا روایات شیعه عشری؟ مثلت دارد بله صد درصد نه یک درصد, صد درصد. یعنی چی ها جا تو روایات شیعه الحبنه با حجمی الحبنه 7 بار اومده یعنی آب آوردیگه شکم یعنی اسید وواجی مضاب مضافه ما الاسفر. ما الاسفر. سی و واژه مضاف مضاف الیه ماء الاصفر ماء الاصفر 37 بار اومده قربون 14 معصوم و امام صادق دام پزشکی جدید حرف خودمون رو بزشه سرش داده از باب ترادفات لفظیه میگه آسیب گرفتیم مومنه چیگه؟ مصطبه جدید نداره تو پزشکی جدید از حکیم اهل تصنن به نام رازی که در کتاب الحاوی که چندین جلد هست پزشکی جدید از رازی اهل تصنن یاد گرفته که تو بحث درمان آسید یاد بینه دیافراگ و پرده صفاق اینجا یه سون میزنه این مایه شکمی رو تخلیه میکنه گاهی یه دونه چارلیتی دو تا چارلیتی اینا تو کلینیک های داخل قاجر کشمه من شدم کلینیک بیمارستان قائم و اینا به نگاه کن من افتا نگاه کردم بله بالباس شخصی این کار پزشکی جدید که کپیم از عمل کرد رازی در کتاب الحاوی هم حاج پزشکی اسلامی آیا مطلب داره؟ بدون که سن بزنی بله بله داره تو پزشکی امام صادق علیه السلام اول میگه علل ایجاد بیماری چیه این آب آوردگی شکم تجمع مایع شبه سرازی بین فرده استفاق و دیافرک میگه علتاش چهار چیزه از روایات شیعه نمیشتم علم جدید هیچی نمیدونم این چهارتاشو رو داشت کنید به قرب و شرقم بکر گناه مردم نجات پیدا یک استاد شلوار پوشیدم مکروه چند بیماری میاره یکی بیماری های قوس کمر تو بحثای دیسک ایکی هم تو بحث بیماری های جداری شکم بحث اسید یا آب آوردگی شکم بازم میاره، فعلا چند تا نقطه بزن دوم کسانی که در شب استاده استاده آب میخورن استاده آب خوردن در شب مکروه چند بیماری میاره یکیش بحث ماست اسید میاره یا آب آوردگی شکم میاره و روایات تصریح کرده ترووایاتشیه سوم، بعد از حمام آب خوردن یکی از علل ایجاد اسید یا آب آب دیگه شکم چیه آب خوردن بعد از حمام اونی که مستحبه وقتی هوا شرطیه یا حمام خیلی داغه قبل از حمام یه چند قرفه آب بخوری یه چند قلپ آب بخوری که به خاطر شرژی بودن یا دمای بالا بودن که عرق زیاد میکنی سردرد ناشی از کمبود آب بدن نگیری قربون این اسلام بلایی چقدر ظریف و دقیقه او قبل از حمومه اما بعد از حموم مکروهه گرفتیم مهمنا چی شد؟ چهارم خون خوردن بیماریای مختلفی میآورد. هم بیماریای روانی همچون قصاوت قلب که سنگدلیه بیرحمی و شقاوت در شخص و یا افراد می آورد یا بعضی دندون پزشکای داخل خارج کشور مثلا داری دندون رو جرمگیری میکنه یا تعمیر اساسی میکنه حقایی خب لثه خون میاد خب یکی از این سکشن اینا میذاره ولی بعضی هم میکنی نمیخواد توف کنه. قرد بده. یا دندون طرف کشیده بعد یکم بیحسی روش میذاره یا خون نه خب طول زمان خون میاد میگه نه نکن آب دهنتو تو بده همچه چه های زیادی قرب و شرق میکنه بعضی متقصص های ما هم تو داخل میکنن چه قلط زیادی نه خون رو باید بیرون بریزی نباید قرط بدی قده های افونی در دستگاه گوارش هم مخصوصا در روده ها ایجاد میشه علاوه به قصاوت قلب از حیث روان این مؤمن همینی لسهش خون روش دائم دارد و برای خون روش لسه معالجی ریشهی کنیم شیه فوق تخصص لسه یا اینکه که هر روز با محلول آب سرکه بگردونیم تا لسهات خون ریزی نکنه و خون ریزی بیافته آیا ویتامین کات کمه؟ آیا ویتامین بیکت کمه؟ برو ویتامینات درست کن اما این جواز نمیشه برای اینکه خون قورت بدیم اینقدر شکم شل نباش عبدالبت نباش هر جای دنیا که هستی این فود های و قضاهای صنعتی رو نخور مثل سوسیس کالباس همبرگر اونا که نمیان قده ها شو رگاه های لخته های خونه و جدا کنن تصم نقاله ها تسمه منسته تصم مومنا، های معادل مومن ها دهنه چرخ گوشش دوتایی وایستیم کناره هم دستمون اینجوری بگیریم این دهنه چرخ گوششه. چیوزه تو رگای اصلی یا لخته خون یا قدرت جدا میکنه هیچ کس جدا نمیکنه نه داخل کشور نه خارج کشور پس های شریف و مردم شریف هر جای دنیا هستن شکمشل نباش عبدالبت نباش عبدالله باش عبدالله باقی به مون خواهدتون قضا درست کنید خودتون قضای سعید درست کنید احکام شرعی یاد بگیری به نفرت تو دنیا آخرت گایی خون خوردن به خاطر لختهای خونه که ترک های اصلیه و گایی کل پاچه یا جیگرسیا یا قلب میخوره ولو مال حیوانات حلال گوش باشد ولو زبه شرعی باشد و خون در بدن که مونده پاک است ولی خوردن خون حرامه نظیر خاک که خوردن خاک حرام است حتی تربت امام حسین علیه السلام به نیت خاک خوری بخوری حرامه. اونجا به نیت استشفا به طربت الحسینیه که خاک کربلان خاک بهشتن اون به قصد استشفا هست. مسمت تراب الحسینیه که تو لیوان بریزی یا تو پاچ بریزی آب آشامیدنی سالم بریزی خوب هم زنی یکم صب کنی تنشیم کنه بعد بخوری. خاک خوردن حرامه حتی اگر پاک باشه حتی اگر بهترین خاک باشه حالا وقتی حیوانی که حلال گوشته مسلمان ذبح شرعی کرده او داج اروریشو قطع کرده قبلش هم بسم الله گفته رو به قبله بوده تمام اجزاء و شرایط این گوش حلاله ما یه تعلق به هم حلاله خون در بدنش هم پاکه اما خون خوردن حرامه پس لخته های خون که تو رگ های اصلی از تو مایچه ها هست یا توی مجاری عروغ کبد هست یا توی دهلیز ها و دو بطن قلب گسمند و مانندو هست اون لخته های خون رو نباید بخوری قابل عرض جیگر فروشی ها یعنی که تو خونه دارن قضا داست میکن رو نباید بخوری اگر اون لخته های خون رو بخوری یا یکی از علل آسیت یا آب آوردگی شکم چیه؟ خون خوردن همه اقسامشو رو امضا توضیح دادم چون مبتلا به اجتماع در داخل و بره حالا ببینیم مؤمنا بحث اسید یا آب آوردگی شکم علل چارگانش هم از روایات طبق فرمایش امام صادق علیه السلام گفتم السلام گفتن درمان اسید یا آب آوردگی شکم چیه یک گل استخودوس با عسل استخدس دوم افتیمون با عسل استخدس از هر کدام یک قاشق چایخوری عسل را یک قاشق پلوخوری پودرشام یک قاشق چایخوری پودر گل استخدس با یک قاشق پلوخوری عسل یک قاشق چایخوری پودر افتیمون با یک قاشق پلوخوری عسل استخدس سوم مبارسه خودمونه سیاه دانه با عسل چای سیاه دانه یا سیاه دانه با اصل شب قبل خواب یا ماساژ هم بده این شکمش رو که آسید آورده ماساژ بده با روغن سیاه دانه خالص تو بس مبارس ما یکی از داروهای مهم در درمان همین چیه؟ بحث مصرف سیاه دانه با اصل در درمان آب آوردگی شکم یا آسیده اللهم صل على محمد وعلى محمد واعجل فرجنا